باب فیلم ارائه شده توسط وبسایت صدای فیلم دارکوب مهناز افشار به کلی گفته اونجوری میشم که تو دوست داری دفعه بعد خوشگل می کنم که تو هم منو دوست داشته باشی سارا بهرامی شیسترش که بشه میگه ما عشق کنیم <متسخن> یکی عیفی داریم و آشبه وافیم و امین حیایی چه پیشی نازی شما دختر من گلی رو ندیدی نویسندگان حسین تراب نژاد، آزیتا ایرائی کارگردان بهروز شعیبی رحیم رحیم. بیرون شهر تهران جایی که کوپه هایی از آشقال روی هم تلمبار شده مردی به سرعت به طرف آقایی که کلاه به سر گذاشته نزدیک میشه آقا ناری نمیشه بی خیال بشی نمیاد پولشو گرفتین چی کارش کنم داره زار میزنه پولشو بیاد میخوایم بریم یلا خود بینم زنی باردار با لباسی بافتنی و دامنی گلگلی که دست پسر بچه کوچیکش رو گرفته به دنبال همون مرد از ترپی بالا میده چیچی رو بخوایی نگرش داری؟ مگه اینی که نگرداشتیم چه گلی به سرش دادیم؟ چیکار کار با سرش کردیم آخه؟ اه. ببریم فرقی به حالش نمی قرار نیست که خوشبخشه قرار نیست که بره تو خونواده لاغن اینجوری پیش خودمونه چ اونجا اعضا از گشنگی نمیمیره. یه شکم سیر غذا میخوره. یه چیزی میگیا. بیا. هر سه به دکل برقی که بالای تپه هست میرسن. شکم سیر برای بچه مهم‌تره. ما با این زندگی این واسه که نمی‌تونیم بچه نگهداری اینجوری به دیت لازم نیست بدین. بچه تو شکمت هم خوشحال میشه. با آقای کلاه به سر همراه میشن و به راهشون ادامه میدن. برژه میلاد و هوای آلوده هم به چشم میخوره. دختربرچهی با پیرهن قرمز، ماما. دامنی مشکی و تلی آبی با نقش گلگلی بایمیدو. که توی موهاش هست داخل مهد کودک میگرده. مامای کده رفتی؟ در یه اتاق باز میکنه که با انواع بادکنک های رنگی تزین شده مامانش بغلش میکنه و میچرخوندش اسکره برفشادی و کاغذ های ریزویز رنگی روی سرش میپاشن بیا یه مرد حدوداً 40 که کت و شلوار صورتی پوشیده با کیک توی دستش وارد حیاط میشه. این داره وکت. سلام. شاید. شاید. سلام، بابای. ها، لب. دوباره. این داخل. کجای شما؟ Uh, Oma like da omale. Man da ran mi la mashin omale komal. Man mi en don bale. Zud na ina man jalsa da. Befamun kek. Das da na. Befam. Kasam kek. Ko mi da ran da tasamija. Aga akbafu. Ye kek. Zud da na. Jana. Befam. Chad. Ko buna ke full be yash. Chize be full. Wa chize nazadi. Mi gam shad ba khonasaye basile خاسته نباشید خاله رفیق جان ببین تو رفت دیگه بابا چیک نکنه میبرم براش بود بچه‌ها فروشگاه زنجیره‌ای قسمت مواطن‌ها نمی‌گم چه درو این خانم با رفیقش با اومده اینجا هرچی چی خواسته خورده کیفش هم پره خرت و خرطوپرت کرده بهش میگیم هاشا می‌کنه آها هاشا نمی‌کنه نگاه کنین اینا ریسیکم هلهولاست فقط خانم اینو جاش تو کیفه اینجا هم هست آقا اینجا هم هست باسن همه هم یه جا بن حساب ببینید ن چه چیزیออก من بلند کنم هر چند بخوین بردارین یا درشو باز کنیم بخورین اول باید حساب کنین حواس کنم حاملم دیگه لا اله خجالت نکش خانم و حاملگی خجالت نداره که وی آر کردم دیگه اون رفیقش چی اون که غیب شد اونم وی آر داشت حالا چیزی هم بلند نکردیم شما انگار شکشون چیزی بلند نکردین خیلی. هر چی دلش خواسته با رفیقش ریخته تو کیفیش فرها کرد هر قفسه تو برو معلوم بفهمش نمیخواد بریم اونجا بگین که من گفتم حساب نکنم بفر Ja Farid ek wil net tyserker bedien maar ek dink تو بالا رو که همه آب بودت. من اینا رو قبول نمی‌کنم. چرا می‌خاش گون؟ بجنه شده بود کابوس برام. یعنی اگه یه بار دیگه مدیر می می‌شدام من یکی انتقالی می‌گرفتم می‌رفتم. رفتم <تصح> شو بهمینا. روز به پشت میز نشسته و دوستش در حال جمع کردن چند تا پرونده. من هم کمتر از آقادونی نیستم. بجون بگو. دیر بیای زود بری کلا هم میره تو انبار. انبار. شب انبار بمونه. من رفتم ایمیل‌ها <تصح> رو <تصح> چک کنم. باشه. برمیگردی؟ با خودم برگشتنم به گلیخونه. ببین خوش بگذره بود خبرت می‌کنم دیگه. روز به در حال صحبت با تلفن وارد پارکینگ میشه. الو نیلو کجایی؟ ببین رقمادو. حاضر رو افتادی نی نی تو راه این یه نزدیکی. یه سبد خرید رو از جلوی راهش کنار می‌ذاره. خیلی بی‌مزه ای. من پارکینگ دارم میام بیرم. بیا دیگه من منتظر. خدا دست. آها علی زاده. بله. چهره کسی که صداش میکنه مشخص نیست. سلام. زان از دور میاد جلو. و از صورتش دقیق تردیده میشه دندونا سیاه و عبروهاش خیلی نازگ و بیرنگ هستند روز به سرش رو برمیگردونه و میره انقدر دارم نخواست ببینمه تو چی؟ تو دلت نخواست من ببینی؟ بعد شیستا توالفه میکردم مردی؟ مازی ها به نگفه بود من زنده بایسا چقدر تون رو میرید؟ زنده یا نه؟ آیوه سانجا کون کنی زو تن نمیگردم دیدنه. خدایی شد یه دفعه خود دو من رو نیافت. من رو نمیشناسم. جام واسه شده. روز به میسته. به دختر دزد فروشگاه با دست اشاره میکنه. این مدرفیقت؟ رو زندگی داخل فکر دیدن نحسام مرد راحت شدنا. در حالی که دارن راه میرن ماشینی از بینشون عبور میکنه. بابا من که کاری با تو ندارم. اما هرچی باشه من تو یه موقعی زن و شوهر بودیم. مهربون باشی جان. من گفتم اگه دلت همش من بچنگام بوشیم با هم حرف بزنیم. اما اگه تو دلت نمیخواد خب اشکال نداره من اجبار ندارم. من که بخوام اذیتت کنمم نه. نه اینکه فکونی میخواد ساکیست سرک کنه. به سمت ورودی پارکینگ میرم آها عجیبه چه من این زن تنها. دوباره من بهت کاری منو طلاق دادی. برای مهریه اما بدی مورده مهریه نداری با هم برای خودم نمیخوام که رفیقم مریضه با عمل کنه تو مورده برای میخوام باید روز به میسته و ماشینی رو که بوق میزنه میبینه محساش تا کارت بیرون میاره اولی کارت اتوبوسه و بعدی ها کارت آبر بانک هست بیا ببینیم و اون کارت بکن بیا بیا نه ببین اسم ها روش نوشه خرد خورد بده ببین شی بیا اینجا یه قون به نمیدم حکاری دوستی بکنوشه خواهد کن به میتونیم رییت بگیرین یه ماشین شاصی بلنده که یه زن از سمت راننده پیاده میشه و یه دختر بچه که کلاه تولد ترش گذاشته از شیشه یه عقب تا کمر بیرون اومده و روز به به سمتشون میره محصوب با های آویزون اونا رو می چند متری فاصله دارم روزبه روی صندلی راننده میشینه در حالی که یه نگاه به محصام اینندازه و میره دوست محسا از پشت سر آروم آروم بهش نزدیک میشه مردی یه گونی سفید پلاستیکی که یه آلم بطری نوشابه رنگا رنگ, رنگ داخلشه رو خالی میکنه و یه دخترم داره پفک میخوره محسا با یه شال دیگه از یه اتاق بیرون میاد و توی ایوون مشغول تنظیم کردن کانالای تلویزیونی زن موسینی با موهای رنگ شده که سفیدیش مشخصه در حالی که قلیون میکشه داره اونا رو نگاه می کنه. مرد که گونی رو برگردونده بود داره یه چیزایی ازش جدا میکرد همه دارن محصا دوستشون دوستشو مگیلی خانم ها پوشیدن و مرد کلا سرش چی داریمانشو برید پاکشه دیگه خوششه اون پاکشه بینم زانو وزک ازش خاطر نمیاد. من صبحش کامل نشد جوجه. آ چیو پیت می، بیلگانا حمای جای بچه معلومه. من بچه 4 5 ماهمو چجوری نشون تو بدم؟ حمجاشم معلوم بشه. مووار نشو میاد خودم میدم بچه عین چی تو شگری نانای میکنه. نه از اونایی. زن در حال لباس شستن، دمپایشو به سمت گربه روی سقفه پلاستیکی پرت میکنه. برمیگرده گردون کانال دوستا مخسا میونه. چه میجوری تو سر دختره؟ حالا این بچه چی هست؟ پسره. پسر. بای بای بای بای. پسر، پایوار. پسرو ادمو داغون میکنه. مامان فرقش با دختر یه میلیونه الان که به سرد شده و پولیش تمیزش یه خونه گرفت. ولی سعید اصلاً دور شده. گفته سه چهار که برش بیارم. تو حالا بزو بگیرت بعدا دختر بیا. واه. وا. ماما, ماما ما همین الانم زنشو ما. زر ما. <تصفح> بابا یا من کابهس خودمینه. منسون سیدیو داره بده من. این کابه خیر ندیده بگو بیاد زودترین مهتاری رو عوض کنه. چه روز پرپر پر میکنه. چی کاوه با دستگش های مشکه بدون انگشت بنده کفتش رو میبنده و یه سیدی هم تو دهنشه برگورت رو هستم میگم یادم برگورت با. بابا من مستیگار چی کاف هم یا یاد تو خونم دختر تخمه ها رو توی جیبش میذاره. ببین نگناریه بگو دو من دیگه بعد بریزه. اگه بتونی یه تومن بده خیلی بخواد حال بده. راست میگی دیگه حالا که پسرها بگو بیزه. باز بخاط قبول کنم همون یه تومن هم بده کله بعد محشو بخوره. برو ورندایی بزنی به شاخه گا. شاخ گا کدومینه؟ رفتم من توای چند تا خونه مشیدم. خیلی توفان انگ خودونه. تو خونه نقلی باشه اش کنیم توش دو تا جاش اصلا مهم نیست. چیزی چی مهم نیست غذا مال باشه. تا گالیو بگی سیگار لازم. کجا بمهقارشو بریم خونه ببینیم. تو صورت آنه. کلاهشو روی سوار ما تو. های شاید تو که تو با بروپانی؟ چه تو خواهی؟ جا تو تنک کرا دارم رافت شایدن دیگه تو درنه این دختره نمیمونه چقدر بوده مره؟ انسا چقدر بوده مره؟ سهر ویستا سکره سهر ویستا اون موقع، الان کم کم باید دیویستا میگیری کتانه یا یا روامد یه خونه میگیری، ما هم میشه مستجره پول بدنی؟ خانومتا بگی خدا خدا خدا دیگه اه یه خبر گذاشتی داشتی ویشه باید بده اینا رو گفته نری شکایت کنی من کجا شکایت کنم چی میشن اگه واقش تا چمو مینازنت کم چیه ورشگاه محل کار روزبه بله بابا روز هم باز بشه تو تفیرا کجا کوف فیلم بودی تو تفیرا اون چه سرجاش. ما، نقاشی نقاشی می‌کنه، دستتون رو نذارید. با کار داره. خوشت گفتی من پولم داره. یه داد بیت بد بدم بابت رنگ و نقاشی و کارگر و اینا. با شاتو ببینیم پس اینو ما مسئول کنیم. اینورم باستر میشه. مهسا با لباس‌های متفاوت از روز قبل به محل کار روز به اومد. We can do it. We can do it. We can do it. You can do it. We can do it. We can do it. We can do it. I want to do it. رفاهمی اگه می‌کشیم این مرتب حسن راج اینجا جای اضافه کار داره باشه کار همین آها بخویش باشه بله این راه رو اضافه میشه اونم اضافه میشه خیلی درسته روزبه هوواس پرچو نگرانی با نقاش صحبت میکنه ما قبول کنیم هیچ اشکاری هم پیش نمیاد مشکل نداره تازه اینجارم داره ببین بیرون فروشگاه بنرده ها تکیه داده و منتظره که روزبه بیاد با اشاره همکارش به محلی که مهسا ایستاده میره Senin de çıgamık mı? Zalap. Benim garneşo diye in bana. Karı daştam. Bebek, her rozum ki poşi be inşa, bir garun be demedim. Ini mi fahamiyan? Demedim Allah. Sen içe çe galati mikoni? Pulmül mi xoyı xabarı nis. Bol pekarə. Ozu ne xam. Olan bacamı beyin. Diş بچه didam tu maşinəndə. Muzaxrafa çini mi gi? Çiş sa bacamən ağayım ki رو hiç bənə götəmə. Hər bədə biray dilət mi xaz mi gi? حس تک اون کاسبی ها روزبه شونه مهسا رو گرفته و داره با عصبانیت میکشه ببین یه بار دیگه این طرفا پیدات بشه دیگه بهت رحم نمیکنم میدم دست پلیس من میدی نه برو دیگه اینجا نایایا شونهشو رها میکنه و پرتش میکنه باختی میخوای بگی ها میخوای بگی مادر بچه میخوای بچاشو بدینه خودشون قیافتا ببینن میفهمن باباش باباش. باباش ما کارمون تموم شد داریم بابا چی رو پیدانه پیدانا کرده زن دوم روزبه داره به مهسا نگاه میکنه تمام خواهد. آن شما خوبه. من اسم محساس. بکنم اکتر من دیده بشین شما. چقدر نازی تو. محسا باده انگوش موهای دختر رو ناز میکنه. بچه خودش رو کنار میکشن. خیلی خوشحال شدارم دیدم دیگه مزارم نشتم. خانو. بله. شما خیلی خوشگلینم. این دیگه چه کار چه میدونم. 3 شب ساری پیدا شده. چی میخواد؟ متاد چی میخواد؟ پول میخواد. مهریهشو میخواد. مهریه. یه قرون هم بهش نمیدم دوباره یه دونه پول مول خبری نیست، خودش میذاره میره. چرا که شب هرچی آزادم خرسام چی شده؟ هیچی نمیدی. چی بگم؟ اصلا خورد بود دیگه. ببین شما اینجانا مونی بچه‌ها بعد دو تا برم. سلام. ببینن چیو قیره کردن. محسا داره به سرعت سمت پارکی که بچه های زیادی بازی میکنن میره. محسا دختر بچه که موهاش بازه و با اسکوتر بازی میکنه سوام زنه. موش باشی! موش, باشی. موش باشی. بیا! دادا! خوبی؟ اسفه چیه؟ قولی. گلیری چقدر کفشاد قشنگه؟ خیلن خلده؟ مامانی چه مامان خوبی؟ من یه دختر دارم هم سن تو عین توه میدون اسمش چیه؟ باران بیرده بوسه تو نه؟ به سمت محوطه بازی برمیگرده که محضا نگاش میکنه دوم دو روز به چند تا کاغذ از مردی میگیره و از ساختمون بیرون میاد که مقصص رو می بینه. اول مکس میکنه و بعد سریع طرفش میدوه توان. خاوم با شما اینجا چیکار میکنی؟ خوبی کاه پر تغییر کردین یا چیز اعمل میدونین. روز روز به چیزی همان به تو گفته چیزهایی گفته؟ یه چیزهایی گفته؟, چیزهای گفته یا همه رو گفته. الا م دل کسی رو میگه و خوبشنبه گشتن خوبش هم گفته گفته چقدر اذیت کرده؟ می روی من چقدر بچه هم جوست داشتم؟ می رو حواست به باش. باشه من تا را فکر کردم بچه هم مورده، نگو زنده است ماشاءالا بزرگ شده کیو میگی؟ گی؟ بازی میکنه این دختر منه نه بارانه بیا. باران. بیان ناچ باران؟ اینجا اون کنیه باران نیست که پس به تو هم دروخ گفته یا تو به من دروخ میگی به من نگه بچه هم مورده ها مگه نمورده؟ Özbe dilinde telefon. Şimdi ben aynı kari bekene. Bilmiyorum. Zaten beklerde ben moder layıkı hissam. Oğlum, 3 dakika ansan o şöyle baran mene. Ona her başı hemse sal baran başı doktor şoma. Bel bacay ki tu xone ruz bebaşa, daxtay. Şuma از اون دو مالانگا. یواش دو تو یواش توولدی، بچه دار شدی. من باختی روزبر دیدم خیلی به هم ریخته بود. گفتش دنبال مالو گشته پیدات نكره. ما هم بعد از یه مدتی ازدواج کردیم. دکترم گفت سود بچه دار شو. خوبه نیلاتیا. نمی‌خوام بهت بگم، دارم میگم که گلی هست. ما هم تولدش بیمارستان دکتر همه چی. اگه بخوای بد نشون می‌ده. بیا بیا. خاطرتره. سی جانم مامان، جانم. بی زخوری آجا هم داری بله دارم بابا هم دیگه من دروغه ندارم به خاطر بخی مدارک رو بهتون میدم یاسه اون بارونی من نیست نه شما نیست ایشو بغل علیزاده رو بغل کن اومدم اومادم اومدم روزبه به از دره کار میاد یه پوشه آبی و یه پلاستیک سفید دستشه در رو باز بکنه بی کفششو بیرون میاره و میشینه دنپاییشو بکوشه گلی پلاستیک رو از دستش میده سلامه تو بابا جم ماما اول سلام حاله پاستفین خیلیدم برد بابا چشم نمید میشه که خیص آبی هست میشه اینجا نکبارو میگرفت رو چون را اجانس نای ملی؟ نه بود با تاکسیم آنم چرف رم نداشتن خوشه نجا فرم داشتن میگفتیم آمین بر این رنباله شش نمید هم برا درست کنم آب داریم چی که خوش کنید اینم بریزم براش بفرما دست در نکنه چطوری چه خبر خزه درشو آم ارس بی برو اینجا هم بگو که آشخال نداره آقا خاله اینجا باز اینجا؟ آزه با بیرام اینکه آده چجوری هست؟ گولی؟ شده بابا؟ گولی ماما؟ چیه عزیزم؟ چونه تلا؟ ام نخواستم برای اتشونم شد چیه عزیزم؟ اینجا را اوشه نشد بیویم بیویم تو بیویم تو شما برو ماما با تو بیویم تو دو مادم خرید نمیشه؟ روزبه ماموش حرف زدم فهمید داره اشتباه می‌کنه. بخوبیش گفت تو خونه؟ من گفتم بیاد توی خونه. خب چه ماده؟ من توصی میدم عزیزدارم. برو کشه گوری حایشب بپات برو. گلی مامان برو چی بگم بابا؟ بیا بعد ماشین بگیرم نه, نه با اون قط بشه خودم میرم موتور میگیرم میرم. بخوب پول بده اصلا من دلار دنجش در. شده درد نکنه. لا باسن خیس یه دورو بشینم یه جا. یام بشه آدم همینجا بشینم بیا بیا نه نه دست بزنم دستم کبوده دست, ای دست بزنم اینجا باشین آخ خدای دستا نکن ما صدا دستشو روی بخاره گرفته روزبه جز دوتر به من نگفتی این اومده اینجا دیدم به امریخته گفتم شبیهی برای توضیح میدید توسنه دوش حرف میزدیم چی کارم کردم خانم زاده با دو تا لباس میاد سمت محصا که میبینه نیست میترسه دنبالش میگرده که میبینه داره قابعکزایی روی دیوار رو میبینه بیاین نارو بپوشم بپوششون نمیخواد رو لباسات میگم بپوش رو بزن نه می اس روز به شناسنامه دستشه بود داره دور و برو بر می بینه بله میخوری. خان معلی زده از آشپز یه نایلون سفید میاره لباس قبلی ها رو برمیدارره میذاره داخلش اون داره نظر به کام بهم میشن. من بعدا ساعت رو لازم نیست. میشه که اینجوری. عجیل چرا کارت رو من بده بعد کارت به کارت. نمیخواد کارت به کارت کنی. خوش مینجا بد میگه. این تو من خوبه. لوکه نیستن. اینش این چه ناسه مگه گلیه؟ اینا مداره که بیمارستانشه. خدا خانمت همین چیه به من گلیه دختر خودتونه. باران من همون شب خیلی خوبه. چه اه. یه قالی روی دیواره که محصا داره روش دست میکشه دعایی منو اینو خانم خیلی کار خوب کردی قابش کردی سلام یعنی. علی زاده است خود شد اینو قاب کردی گلی از اتاقش بیرون میاد و محصا رو میبری نداره. من با من با آجن از مجرد هست جایی آین بارونه بَم میاد من خودم میرم. بَن نیومده. چه جوری میخوای بری؟ میرم تو پارکینگ میشم، بارون که بند اومده. بر... میرم تو پارکینگ جلوی در همسایه. بیا بَر مینه. مامون تو. برو تو میگم. پس چی میگی؟ یابودی تا حالا. نیستی. نیتاسی من. ناتاست. بیا. نواتکی واسه انقدر خوشگل شدی. میبریم خودم میبریم. نه من خودم میارم. یه بریم بهت میگم. با این دست دار نکنه کتلت داریشان پوش همه جا کسگیده بارو هوا بارونیه محسا صندلی عقب ماشین نشسته و داره کتلت با نون میخوره کنار دستش تراکت های تبلیغ مهده کودک رو میبینه که یکی شو برمیداره یواشکی داخل اکی فش میزاره آخه خوشمزه است خیلی خوشمزه است تو هم زندگی خوبه اگر باران منم هم زنده بود اگر من یه زندگی داشتم از این بهتر خدا نخواست دیگه پس نبود من هر شب هر شب خواب اون شب رو میبینم اگر تو بفتیر نکرده بودیم اگر تو ما رو تنخان از آشته بودیم کسی اینقدر چیزی نگفتم که من به خدا را شوی تو دوباره بچه دار شدی زندگیت هم که خوبه اما خب اسم یکی هم میذاشتی باران بگه خیلی اسم باران رو دوست داشتی خوی گفتی یا مثلا میذاشتی محصا درنت بود بدبخت نوما بچه تا تو توشی کمش نگرداشته بود اگر میروفن بذاره بره نگویی دنباله؟ میروفن نمیذاره تو هم اگه شوارت همه سرش به کار باشه هفته به هفته به معمولیت معتاد میشه بیرو باشی که همه زنهای این امرکت باید معتاد باشن چطور نیلوفر فرد نشد مادرت مصالم نبود مادر من فرق داشت بابام هم خیلی خوب بود عشقالش این بود زود مرد اگه زود نمارده بود اون مازی های همه چیز نمیشد همه کاری ما ولی بدونیم چه بله های سر من اوورده اینقدر ن چیشم می‌شد چیشون این من می‌گرف باد کترک خیلی نمی‌دنید من صلح‌هایی که دلم بخاط می‌کنم از چی مرد بی‌غیرت اومد تو زندگی ما روز به از آینه‌ی وسط نگاه می‌کنه ماشین رو نگه می‌داره آره من غیرت نداشتم زنم کنالم معتاد بود نفهمیدم من بی‌غیرت بودم بچه‌مون معتاد به دنیا من گذاشتم برگری سر خون زندگیت ولی الان غیرت دارم بخوایی به زندگی من نزیشی. زندگی تو ندیکش من زرد نیستم اما درست میزنی گروپایی گروپایی میتنیگم خرد کرد خرد کرد کنم داره با الو میاد کنم چا من تو این جاری کنم خرد کرد خرد کرد خرد کرد برشی برشی خرد پیامارو پایه کیفش که میزه می مواد شیشه داخلش باشه با هم کیف گیرنه دو سال حبس تری من بجون بالا نمیخوام ان کنم غلط کردم بجون بالا نندم بالا کارم بجون بارا راز جون باران راز می کنم دور برون بجون بالا نکن بارم مرد میدونی تو جاده به من چی گذشت ها میدونی وقتی بغلش کردم چه حالی داشتم میدونی وقتی با دستای خودم بچه‌م خودم آره من که روزبه تلفن رو نگاه میکنه رد تماس میزنه مامانم اون چیه داری میخوری؟ شام تو بخور دیگه نیلوفر تلفن به دست داره زمین رو خوش میکنه نه بخورم میخوام تو بخورم نبیم چقدر دیره؟ هنوز نخوا بیدیو بخورم بخورم نباید بخوری؟ برای که دل درد میگیری شد شما تو بخور دیگه؟ نه بخورم دوست ندارم خب چی دوست داری؟ چی درست کنم برای؟ ماما چهانه مامان؟ خانیمه دوست بابا بود؟ نه دوست قدیمی مامانه در دندونه بود؟ برای که مصفاک نزده همین همون بابا کرد؟ بله با ایران کیه؟ دخترون خانیمه تو دیده بودیش؟ نه از مامانش نمی ترسه؟ محصو تو ماشین روز به درم این کچه پیاده میشه دست رو درد نکن محصو از سندلی اقعا پیاده میشه میزنه به شیشه جلو من یه دارم پول داد زمه در چشه فروخته پشیمون چیکام پول دادن کار به کاس کنی میخوان کمکش کن نه نمیشه یکم ناراحت نگاه میکنه بعد میره روز بهوخ میزنه و با دست اجاره میکنه برگرد دستو 닮اتم مقداری پول میگیره و با خوشحالی بوغچه نونو روی سرش میگیره و میذره ماشین روز به حرکت میکنه ربین ماما سر ما اگه درست اجارت این ور بر بشه این خلاف خراب میکنین میکنی سرمون بابا لنگ داره میخوام برم سر کار کار چی هم میکنی تو اسا گورا از ناکو پیرا تو ناخوری با بزرگترت توی در حفه درازو بپاش بزرگتره احترامشون نگذاره اعصاب هم بکش بکش اینجوری پاچه نگیر چی غلطی کردم تو رو رد دادم اینجا پر بیاد میرم میام پشت سرت هم نگا نمی کنم برو منو بگیری وانگ میزنی بکشی کار دیگه نیست گورا هیچ بابا چوقی میخوره میگیری اینو میزنی ولش کن تو میخاست سرتونو انداست کلهت دیگه, باقلت دیگه, باقلت دیگه, باقلت دیگه باقلت بیر بار تو توالت خود تو بشو کشنه که خرم نفهم میدم دیستم بود به زگ اومدی کونه ها کار داشتم آنجون چی میگه اینو با دوست محسا رو تخت خوابیده کنارش کاوه با پاهای دراز کرده داره نون و مربا میخوره عوض دلو پی خوردنی لخمه بزه دست این آزش نمی کنه بیگویی جویو داده من باید چون رو کن بچه هیچی نمی خواهی. خواهی بچه تو چه هیچی نمیخوری میخواد بچه‌تو هم مثل من بشه بیا نمی میره ها نه نه هر واسهنده من تو به جایش دیگه این جمعاتی چشومیشی کمه تو ها مردم میرن دن... گلو گلو پول خرج میکنن بچه صداش هم ما مفو فف صداش نمی میتونه جای استصاب صدا بچمالش جان کون مینه بچچه‌ای بچه‌من چه میکنی بچه بچه این ای تو بچه نه پول رنگ خونه مهسا یه لگد به ساق پای کاوه میزنه و یه پشتی که درش بازه رو جلوش میذاره و توش میگرده راست میگه مهسا این تو پوله میزا خودش هم بزرگش می کنه. میزا بزرگش می کنه. من چی میگم داشتم. یا. چانتا ترافل بیرون میاره، بکاوه میده. اوکی. داره هلیونه. ابوجه. دستش میریاته داد؟ عوام جی هالی داره. بعید می دونم قبول کنه. یعنی چی؟ اون پول می من بهش پولش می پول پول دیگه. باشا باشا. یا دیگه. باشا دیگه اه. کاوه. کاوه مشکی و قرمزشو از شارژ برمی و از اتاق بیرون میره. سازتنا روز به همین جوریه داخل اتاق و همزمان در حال کار با گوشیه بچه‌دافینش بچه‌تن گرداد ایشا وقتی پول دستم میاد میام همین با زاگش می کنم دوباره بگیر ببین 600 که بشه میگه ما عشق می کنی یه کیفی دارم واسه بابایی پسرا ها اشکم پولا هم اینجوری بده حقم خب حقم حقم چخه به این قد آیه است نه پس واسه شه بهش پول بده این جنیفر بگو خودشو به شونه مخاملام بینو نازو خرج کنه این 2 تومانه علی که بهت نداره واسه پی کار واسه جام کن من میتونی بکنی عزش. آره مامی دلارز کردم. این گله زمانی ببینه. آصه می نه. جان چی حق نیست نی، نیست؟ ات نی؟ بله، حقو سکوچه. هم چه خوشگل پیچونده. من فهمیدم از کجا خردید. همین خطو بگی ول نکن. می‌تونی به دوش شیشا. خیلی بیشتر از میرے پلتفورم. مطمئن باش اگه بچادن طول نمیده. محتا کودک. نیلوفر یه پلاستیک بزرگو داره از راپلا پایین می‌ذاره. یه در رو هل می اتاق میشه و با پشت دست لباسه رو میتکنه. صندوق <تصفيق> رو از گلی میگیره و به محصا میگه. ناگه نگفتم از غریبه هیچ چیز ندیدید منینو شما چطور بشید شما غریبه یه سر اومدی رفتی همین الانم هم نمی‌فهمم هم من اینجا چه کار می‌کنم موضوع شدم بیام نگاز از زوزبه گفت دیگه نریام دامت خونن تو اینجا خب نباید اینجا می اومد می‌گفتم این جو جالو بردم برات گل اینو بردم برات شما دستت کن خیلی زحمت کشیدی یا اصلا نشخ خیلی نشاله فوق من خیلی وقت خود تو زندگی نمی، من جای حسابی نرفته بودم. یارم رفته بود شووو بچه یکی. دستو داد نکرد. دستت دست گرمه دیگه. دست امیدوارم تو زندگی بهتری داشته باشی. خودت فکر خودت باش. هم جوونی هم خوشگلی. خیلی خوشی از دادم که گولی امان نمیداد. سلام خدا. حواست تو بچه‌ها هست؟ من خیلی تو دوست دارم. گولی هم خیلی دوست دارم. اصلاً این بچه خودمه. من زاییدم به من یه خاله. دوست ندارم کسی به گولی نزدیک بشه. بی برو تو دوست نداری یا شوارت دوست نداره من دوست ندارم روزم از من بیشتر و بچه حساسه برو, بیرو. میکن؟ برو بیرون بکرزی من خرم چکر میخوانی؟ برو بیرون پرت پلی ها چی میگی؟ محسا میره و برمیگرده بعد رو زمین میشینه در صندوق رو برمیداره رو جه ها رو پرت میکنه بیرون و بچه ها همه دور صندوق جه میشن سنکلی اونس کجا بیراشد نسان نیمید علیزاده بخش هنگ کرده در حال حاضر من 3 ساعت اینجا رها شدیم ببخشید شما یه چند لحظه بعد تعامل بفرمایید اگر عجله دارید میتونید برید از صندوقای دیگه استفاده کنید منم جمع کنم برامون شما نه شما اگه اون که چند لحظه صبر کنید چون جنستون فاکتور شده ریست کنید دستورو لطفا نه باشه آقا بده چه کوید بله یه پس آقا الان درست میشه چند لحظه از کنار متسدی رد میشه و میاد و محصا رو میبینه. چشم قره میره اینکش رو برمیداره و بیعتنال رد میشه. می به ورودی میرسه که پردش نایلونیه. اول روزبه میره بعد محصا میسته. بیواره بیرون. بیواره بیرون بد میگن بسید چی بلند شدید اینجا؟ مگه ماما قرار نذاشتیم بسید رفتی در مهد کودک؟ در چی به من پول دادی؟ مهریتو نمی خواستی. قول گفت نمیدم. گوشی فعال کردی به پول نمیدم. بوربیروماسو. بوربیرو بمگه. کی بوربیرو انگیور زندگی منو نابود کـرد دست سرم زرد و. خوروشگاه. روزبه توی فروشگاه راه میره. نگران به دور و برش نگاه میکنه تا وارد آسانسور میشه. Sedaro ke mishnave sari o besakhtir julai basta chudan daruni giro o midavi giro. Yavarim, yavarim giro babinam. Ya laga ba khod faqat khoda. Sedato biyar pain. Sedato biyar pain. Roz bey khod. Chogam arum Адашо гора гора гора. Нашоли جميعا. Ховай бада бада. Йога. Ега. Ега жоаер аби ала. Ега озаж пачел дозилай. Ро баче роза. Оваче чешав руску. Яване. Ля кяди мен чиза. Бибирин биро мосала. Ади биро мосала. Ади биро мосала. Ади биро мосала. Ади بوز به یقشو میگیره و میبردش در یکی از راهوهای قفص هم میگشونتش روی زمین در همین این کارمندان میاد بکردی فقط مادرم درست از سه تفر نگو به یه شیشه آبلییم رو برمی داره تهش رو میشکنه. من مامسا عرکایی میکنن بده شیشه بریده رو میکشه رو دست فرار میکنه مردم جمع شدن و ترسیدن؟ و روز به نگران مسیر رفتن رو دنبال میکنه و می که محصوب با عجل از پله های فروشگاه بدن وسط خیاپون می روه او رو از شکایت کمش دست پلیس چکن؟ یا اگه زنم عجب زندگی داشتی تو من متاسفم مرتضب ایلای نسته محشان آمده به یه نیمه کاره که داخلش پره از تیراهن و آجور و کارگرای مشغول به کار هستن از دست محشان خون میاد اشارشو خون میکرده مرد لاغر که کلاه ایمنی به سر داره نزدیک محسا میشه. مرد با عصبانیت به اون نزدیک میشه و محسا عقب عقب میره. حالا مرد عصبانی‌تر میشه. محسا میترسه شروع به دو میکنه و مردم دنبالش میداره. ماجیا ماجیا داد ماجیا چی چی دی؟ بادر قلار کن از اینجا براشی. برچومادی. برچومادی. اوه کمکم کن. یابری منو ببر نه خدا من تو دوش شوری. داداش راسه مادر منو تو کشید داداشش بهش دادن خوش خوشت منو خوشت لاز یار سنگ پرت میکنه مرا گلگیاب گلی کمک میخوای مسا مگه نبردم تکی کنی ترک کردی اشکی هر واسه کارش دارا باشه مازیه باجه زنده است دوران قزنداس کویام رو پیدا کردم تو بهم منچوره دادا Beyoba ci ci jabış eyne yani İyi var zindigim bu ruzme badbət lahu kedi bəs də bu baba zəngərə pəçədar şod mən xodam bilmürəm hamı danan duruq deyəndə sən yalan sən çə məcəni polo məsso polo deyəcəyəm yəni be xoda آذیا مامان من برم ما چرا مامانی نمیخوای با تو صحبت کنی دجا همو خونه نیلوفر گلی رو توی بغلش گرفته و معاشو ناز میکنه نه مامانی خالو خانم تنه خالام خانم کرمی پیششونه خالام بهشونا بده نمی دی بخواب شب تو میبریم پیشم نه تو بیا کنار رودخونه. اوایل قروبه و روزبه داره رودخونه رو نگاه میکنه. از که بیداری؟ تقریبا نصلا نخوا دلش میخواد پیشش بخوابم. نمیخواد بره مهد. نه برش. از این جوجه ماشینی ها میگیری براش؟ نمیخواد گلی رو از دست بدم. اون معتاده. حرفش برش نداره هر جام بره شکایت کنه میگیرم این می ازنش کم بعدش چی؟ اگه ترک کرد؟ اون اگه جمعه ترک کردن داشت و همون شیش سال ترک میکرد هلان دیگه فرق میکنه فهمیده بچهش سنت است اون موقع هم که میکشید میدونست بار داره ولی باز کار خودش نمیکرد از اون فکر بچه نبود بگو لی گفته اونجوری میشم که تو دوست داری دفعه بعد خوشگل می کنم که تو هم منو دوست داشته باشی ناتوانا خود به این اون فکر نکن الیو بیاین. وايش بقى بوتقه تاون میشه اینو؟ تازور تمون دیگه نگو. دست دادستون اینجا بدونی لوله رو, رو کور کردیم. مردم میخوام بیام برم. ما امروز میتونیم درخواستا رو وکس کنیم؟ آری استاد. فقط اینجا پزا کمی کافی همه... م... چهل انتخاب کردیم. اشکال نداره. دست داد نکن. قربونت. کاری داریم فردا تا خالته برو بیه. بیا. من از اداره مرکزی تماس گرفتم الان. فقط میسن ماجاری دیروز به گوششون رسیده. چی گفتن الان؟ چی گفتن یه مدت باشه اداری باشه تو محبتی نباشه مثلا اینکه چند تا این من موشتا. تو اداری باشن شکایت روزم من خودم الان بهش روزمی میم. وقتی نگاواست تو رو قاتی میکنی. من اصلا نمیدونم چی میگه. هوا دارن قضاوت میدن. میدون من که میدونم هر خاطر. فرض دیگه میاد روزی که می. اصلا اینکه اینجا رو بگردونه. مو روز به این چه حرفی که اینا رو تو روز به رئیس سوئی. پاویز دور از آب اساسا بیافت روز به مازیارو ما با لباس مشکی و کت و شلوار خاکستری تصویهش رو توی جیبش میذارم و میاد تو این دو روز هم اوشکری پیش بگم باید بیان سران خواهد دیگه خدا خیرت بده اون روز اومد این مادر رو حلالش کردی و انه خدا راحت موند دمت کرد مادر تو که گناهی نکرده بود بخواهر بشون باید چی کشیدم از خواهرت روز به بلند میشه در رو میبنده و میشین این روز اومد اینج تو واقعا انزدیش؟ به تو چی گفت؟ گفت فهمیده بچهش زنده است هزم خواست باش برم شکایت کنم ملحیت گفت پشتش بایستم Maar kan karl aswere hartstikke shirt kunnenusionen. En u omdatτοen is die mandatie rad Alcoholen ar plannedte. O sie daos si, het hzedende ges不會. Die jaondens die naming ez. Wat die j mist 1987-mogel? Geest, hat man die derivabelinkend geheel? Verste ee kun mengonruie شاید رو کنم. رایی داره؟ جم کن برو. اونه یه جایی که نتونه پیداد کنه. اگه بخواد شکایت کنه، باید بری آزمایش دی این ای بدی. اون وقتی که مکافات میشه. جم کن برو که باز مجبور نشی بزنیش. آشباز خونه یه خونه محصا. درد و بخوره وسط قلبم. این رو که دادی که آبه رفته تو صورت هنریه. یه خوشاری رو پاشپن میده. حالا این کابه خارجت هم میکنه آره بابا هرچی داره حالا هر خارجم میکنه میوارم خیله دیگه گفتم میوه بخورم سامی به تو جونم بخشم خوشگل شد یار چمی خیلی چیزا خوبیه با. من خودم سر باران میوه می خوردم بعد بابا بچه خیلی باهوشه دیدم یهو ژاکو جینرا وقتی دوربین رو وسوسه میکوبه اینجام ماشین زینه اینجا ما داخل باغی پوله پخته بود بفهمی کامله واسه من فرستاده نمیش گفت مسافت مسافت بعدش میز با کاوه رفتیم برام آب میده خرید دستنی خرید تا خونه خوبم دیدیش گفته اگه بتونه حقش از بگیره این با امروی بیگه جا زندگی میکنی اچم با امروزارگش میکنی ولی به قول ماما پسر به عزیز کرد سر به جایزیه براش میخوری میفرستی سر خونه زندگی سر باید براش خونه بگیری لا لا. کارکاسه بیجور کنیم نکنیم تو مشغول میکنی دخترم شد بهتر بوده سر بجورم اینه بینه یه ماهیش هم داری که آره خانومه ماهانش قادمه صابیه هم جون همهشون با در میره بچه هم نمی گیرده خب گفتیم یخود بیشتر با هم باشیم که اخلاقه هم دیگه دستمون بیا <تصفح> زر ما زرن خوشگله ایوان تو تو میده من بپشم قرد زی کیه قابل من رو برداشته اینکه انوز دم نکشیده کیه بوشاتون کره نمیشنوید خواستم قضا داخت حالا چی شد مگه قاسمیت تو ساکت باش لادم تو هم برو ببینم اگه همش قش قرف درست می‌کنی اگه مگه با منی میخوام از این کاری کنی شر به پا نکن اگه آش پس خونه سبردی به من خیلی غلط کردی اومدی دست داده او یکیدی طورو شدیا با حال شو بگیر جو زیاد کرده همچین بزنم تو سرت چهده سگ بدیا سگ تو اون نوزادو خرد ضعیف و شده باباش رو بابا این آبا آبا عظم و لادن با هم دست بیقه میشن و دعواشون بالا میگیره. بقیه میان جدا شروع میکنن. چه رنگی کردی منو؟ زرد. چرا زرد؟ چونگه میخوام زرافه بکشم. چونگه؟ چونگه؟ از درخت میره بالا برگ میخوره آخی برکه درخت تو برگ درخت تو میخوره کنم چشمو نه تموم شاد بزر برام خودمو ببینم نه نه نه زنی به بابای از میگیری خب باش مفرسیم براش بیا ببینم بزر بینم خانی چی میگه خیلی هم که رو صورت خودش گربه نقاشی شده دستشو مثل پنجه میکنه و تو بقله هم سلفی میگیره هم <laughs> <تصفيق> <تصفيق> خیلی خب علا جانم ندارم مستندرم حرف میزنم علا خاله ندار ببین مامامی صورت مامانی از عرافه خب باشه میاد میبینه برو اون را جم کن جانم ندارم چی؟ کی؟ خب چرا زنگ نزدی به پلیس؟ ما باید بیت بگم؟ با بچه ها حرف زد؟ علا آقا سولیمان باشه ما دیگه رو نذارم ما منتظر کاری هستیم معلومه باشه باشه مامانم میام صبر خیلی خب باشه بعدو موقع زنگ می‌زدی بحثو با عجل خودشو به خونه نیلوفر نزدیک میکنه خانم چی می‌خواد بیاین درو واکن با کی کار داری آقای علیزاده روزبه علیزاده اون واش کاری نداره من وامیلشونم آقا این در گلف و بیرون وانه میگه خب از تو واکن گلفت کاریت رزوی علی زاده نیلوسا آیفون تصفیری رو برداشته و داره همه چیزو میبینه و میشنوه که گلی بالا پای میپره و حرف میزنه هیه اتاق بودوری بودوری نمیاد وقتی به حرفم از روی مبل برمی داره با گلیو توی اتاق حل میده و میره که تورا به چند تا صندلی میخوره یه دستمال کاغذی از روی اوپن برمیداره میخواد دست کلیدو برداره که جا کلیدی کنده میشه در حالی که به پایین رسیده داره با دستمال کاغذی صورتشو پاک میکنه من توضیح من توضیح میدم من توضیح میدم این اندشه داره خودی قانون علیده نمیشه سین لوفر میره سراغ مصهایی که با چندتا خانم درگیر شده میخواد مانعشونشه که توگوشی محکب میکن نیلوفر دست شلو دهنش رو با خم شده مصا بلندش میکنم می که از بیننی سر خو ها. محسا رو میبرن که یه لگت میزنه و فرار میکنه. نیلوفرم به دنبالش میدوه. محسا! نیلوفر از بالکن خونه داره حجوم مردم رو میبینه. دستش رو تو هم گفت کرده و اونا رو به هم میماله که با صدای زنگ روز به میاد تو و اونم میاد داخل خونه. چی شده مامان؟ چی افتاده این؟ هیچی. من الان شکایت کنم. اینقدر نافهمه. داشم میگم اصلا این خاله‌م رو نمی شناسم. هیچ ارتباطی با ایشون ندارم. باز حرف به خودش می‌زنه. به من چه یارو بخواد دستش بخیه بزنه. خوب باش. جون باش. گلی حالش خوب نیست. جوجاشو گرفتی؟ نه بابا اصلا یادم رفت. گلی بابا دخترم. ا چپیشی نازی. شوه من گلی رو ندیدی؟ روز به در حین صحبت موهای سمت راست گلی رو میذاره کنار گوشش. دیدم من تامو قش خونم. بله دیدم چیزی نشده که خوب میشه. منم یه دفعه خوردم زمین پام زخ شد خوب شد. من دیگه نمیخوام اون خانمه بیاد خونمو. باشه فضا دیگه نمیاد. اگه بیاد من چیکار کنم؟ من خودم پشتتم بابا حواسم بده هست. خب اگه بری سر کار اون بیاد من چیکار کنم؟ یه پخشکون فرار کنه. اون گربه میترسه تو رو ببینه درمیاد. زرافه که ترس نداره. نه، کی ظرافه شده؟ مامانی. ايه؟ مامانی ظرافه شو؟ مامان ماما. مامان. يا اكسانه شم بده كده. خوشش نشو. خوشش. صورتتو چرا نشوش يا سوتو. مامان من لا واسس جونيه. تو صورتت سویش بود مامان. شماره دیگه خونومار دادی؟ بله بله. بله بله. سلام. ببخشید میشه رو امضا کنی؟ چين. یکی از هاست مثل که زن اولش معتاد شده رفت زن دیگه گرفته. این زن اولی قاتی کرده مشتمو ریخته به هم. همه امضا کردن. بفرم اونی که داری واسه چیه جمع میکنی خود من هم باید داری بقیه همسایه انزا بگیری از فرقش اینجا بیدو ما اینو بگو نه میخواد زرم ها ما خودم داریم اینجا میرم بفرم روزبه روی تخت دراز کشیده پترو روشه و شبها به کنارش روشنه گلی خوابی؟ باره میخوای بیارمش بیش نه سر بزنم yelo far daraj duravashu dar miyare va lebas khabe ana bipushide. Tas vaghe fik mikaram ke roza ro benam. Khodam fik mikaram chero khodam bache dar nashode. Mesl vaghe madaram bache be donya biaram. Beshi be da. To ghalb pas goli fik mikaram madar uni ke bache be donya miyare. Ama alan motmaenam ke مادرش مدرش میمونونه همهاعنشم هر کاری بتونم میکن که تو مادرش بمونه. بحث اصلا راضی نمیشه جمع میکنین میری آدمی که من دیدم هر جا بریم دنبالمون می مازی ها بود پیشم می گفت مح ازش که از اون شکایت کنه گفت تنها رامون دیگه جمع کنی بریم یه گلی رو از من بگیره دینو از لای پرده دم در میاد خونه اناریام پشت سرش. بابا دور دوار میشه علی. پولشو دادن بچه‌ها. باید ببینم بچه‌شون سالمه یا نه. بچه‌ی خونه میخوام نگاش دارم. پولشو دادن. بورساقم که بهش پول دادی. اف که باره شیشه دارین. واقعا با چک کولاغا بی وردم. ماله اسایی من پول تو پس نگرفتی بعد چی می دیدی رو مخ؟ خودون پول. تو تا ندارم کاوه پسات بده. کاوه دکانیری میگی ها؟ آره کی. اون که پول منو رو تو رو ورداشو در رفت. انار قدیما تو خیلی با معرفت بودی. اینقد لیلی بلالاشو نظر مامان. اینا بچن. تو کی با تجربه ای؟ تو اگه حجرم داشتی تو بازارا یه جوری بعد zarar میدادی. این همه می خری می فروشی می کنی. حالا یه جام zarar بده. من نمیخوام اینجا شهر درست کنم. برمیگرزم. خودت راضیش کن بیاد ماما. دیگه من نیام سر آقشا. چی همینطور وای سادین؟ برید امال کار زندگیتون. دوتا من داری بدی بهش. اون باز سر چندرق از کرایا جونت در میاد. پیشا، بخوابش. یا زم زمین کدون گوریه. نیلوفر و گلی وارد مهده کودک میشن. گلی میره سر کلاس و مادرم تجمع خانواده های محترز قرار نیست جای ببری این مهدکده یکی از معتبرترین که هم این, این منطقه است فقط به مدت چند روز ها رو من اینجوری سن این مهدکده اگر کاری فنی دارید سمای من جاذب بدین جا سمای من جاذب بدین ببینید کسی که به همه این حرفاست یه آدم روانیه الانم یه حرفی زده رفته من خواهرزاده خودم توی این مهد شما اجازه خواهش می‌کنم ek far mai ek far mai ek far اشران میگه خال نیلوفر بچه‌دار می شه. خانوم ما به شما اعتماد کنیم بچه‌دار. چی ما ترسی بوده که. چرا ما یادم غربه را بدی؟ دل میگه در این ما هفته مرخصی بگیرم بشینم تو خونه بچه‌داری کنم. بچه‌مو دیگه نمیارم. دست به من تو این من. نیلوفر شما دیگه لازم نبود تو بیا می مونده خونه با این حالت. من خودم به سر کله. خانوم بس جمعشون کنید تا به تو خبر رو. آر باز باشه اینجا مادر ما خیلی بد بود حسین محسن بی پدر پیرش کرد همیشه می ترسید داغ بچشو ببینه می گفت کمال آدم میشکی قبل اینکه زبونش بند بیاد می گفت هر روز دارم داغ محسن رو می بینه. مادر ما مذهبی آدرس محسن رو می خواست. آدرسشو ندارم راه حل شما همونی که به روز بگفتم یه آدرس میخوام چرا نمی دیدین خانوم به شما آدرس بدم قام یه ماجرای جدید واسه چی اسم محسن یعنی ماجرا مدشم. اگه یه ذره انگیزه داشتم بعد مرگ مادرم آقا فت میدونن اگه گلی ب فهم میشه حالی میشه خرتون داره زندگی ما رو خراب میکنه حالا زندگی خود منم به هم ریخته دلم هم خونه که یه بار این بچه رو بغل کنم به خودم میگم اینطوری برای بچه هم بهتره به دختر ها می گفتم همشون مرده گفتین مرد چون به نفتونه من که میدونم از ارث چیزی بهش داددی ما با من باید اون بازیا نش خانم از معتون ننگ خ و هر کاری کردم پشیمون نیستم امی چهار تا زمینم دوت میکنیم رفت پیکارش گفتم اگه بریا یه چیزی داشته باشه بعد شب من چهار تا زمین بهش زدم شما بچه‌اشو به دام زدید غیر از اینا شما میدونی یه مادر فکر قاتل بچه‌اش بوده یعنی چی از ترس شوهرش فرار کنه یعنی چی روی کاغذ دفترچه یادداشت مینویسه تا میکنه و بهش میدم باور هنوز شک دارم که روز به روز تو جاده اصلا دنبالش گشته یاد سلامات ولاتون هم اونجا تعویض بده ما صبحтина اومدن فروشی دنبال یه مرد کوتوله با موهای کم‌پشت که یه کبوتر سفید داشت بود. بودی. زمانی بودیم الان از بودی؟ من. اگه دیدیشون باشه باشه. دیگه پی دوست نشی چی؟ آخه شب دیدیم کلانتری. همین یه کارمون. ها. آره حالو یه جفایستا دیگه، آنترنت میره نه، نمیدونم کیه گفتی کی؟ نیلوفر کی؟ نیلوفر میگه نیلوفره، چی بگم؟ ها، حالو حالو گفتی کیشی؟ بزنیم شهری صدرش بیا شماره شمارتو بزنیم تو هم. برو دنبال زندگی هر موقع که اومده رو خبرت میکنم کی میاد دیگه قروبی میاد من جایی رو ندارم برم همینجا بمون تا بیاد سال خانم با که کار داری اینجا مسا مسایی نیستم جوانم عمولا صبح نیرم از سی برمیگردم من رو میبینی موندم من کار داشتم دیرتر میرم اینا میمونم خوشگله من بندر اشغره بهاری قناری ای برمیگرده پرده رو میزنه کنار پشت سرش یه اتاق که خانم‌ها همه دارن میرقصن دختر خاله تارخ نکن به رم نیلوفر اونجا رو ترک می‌کنه اونجا آتیش روشن کردی مامان با دوتا متاد کثیف که یکی جوون و یکی پیر هست صحبت میکنه نه پو در خونه ما رو نوندی مادر خونه شما حالره؟ چی شد پس کم بین زنگ بن زن. که بلبل و بلدی؟ نه اینان دست که میچن مین اونجا اگه راست رو گفته بودی یا باات کار نداشتم خدا می میدا چرانگ آبو می به متادال میلوفرم میره دست و با موهای سفید نشستم. یه پسر جوون که روی لباسش طرح چشم ابرو داره و یک کاپشن مشکی روش پوشیده داره نیلوفر رو تعقیب می‌کنه. نیلوفر به آدم آدمو توی پارک نگاهی میندازه. همه سیگاری سیگاریو در حال کشیدن سیگارند. دو تا آقا، یکی خانم. یه آقایی هم داره با پاسبان صحبت میکنه. پسر جوون به طرف نیلوفر می‌دوه. اینجا چیکار می‌کنی خانم؟ دنبال چی؟, چی؟ فروشنده کار دیگه باهاش دارم. بیادم حالا. حواست به بسات هم با چه تا بیان محصا را کجا میشنسی؟ میشنسم بخوای آدمش هم از بهت عرض اون تربیت بشه بیا یه دقیقه های این تو میشه بگی بهش بیا؟ تو خش دارید به یه در سفید رنگی میرسه یهکشک داره باز کنه اول میاد در بزنه بعد با پا هول میده. دستشویی عموومیه همه درا رو با پاهاش باز میکنه کنه توی یکیش یه مطاد داره مواد میزنه. محسا محسا پشت سرش یه مرد بلنقد چارشونه هیکلی با موهای پرپشت فرفری یه چاقو میکشه نینو فرکه ترسیده اقب اقب بیره تا میخوره به دیوار موکی باقیه نیلوفر در حالی که خیلی ترسیده بود، کیفش همراش نیست، بیرون میاد. میاد از تله پرچه که خودشو میگیره. پسر جوان دستشو میذاره روی شونش. مگه باسا رو نمیخوای؟ اون طرف پارک. نیلوفر محصا رو پیدا میکنه که با چند نفر دیگه که تینان جوز بهشونه نشستن. پسر رو ساخت و وسالش رو ترتیب کنید. یه باشه باید. یه باشه باید. آه تینا صاحب، اوصاف. محمد نو چه جوریا؟ آشنا. عارفه اسمش. کارامو چه جور می‌کنه؟ نمی‌دونه بدون مرد نواب بیا اینجا. میخوام با حرف بزنم. شوهرت الان به اون چه کار کردی؟ زندگی ما نابود کرده. حالا که بهم گفته بچه‌ات مرد. خب من می‌خوام درستش کنم. مگه حریمتو نمی‌خوای؟ من بهت میدم. خوش‌دلی با کلاسیا، نافروشی نیست خانم به مگه تو نمی‌خوای خوب زندگی کنی؟ زندگی خوب بارانه. این بچه داره آسیب می‌بینه از حرفا. می تونه بخواب از تو میترسه معلومه که نمیتونه معلومه که میترسه شما اینجوری چیکار دیدی وقتی به فلان مادرشام عاشق هم میشه اون عاشق تو نمیشه برای اینکه من مادرشم اومدم الان بهت بگم اومدی اینجا که چی اومدی بگی من بی خیال به آروم بشم نمیشه اینو تو گوشت فرو کن می خوای بشن بین خودت همو خازیم مثل من به چی بگو بعد کجا جنس بم. اگه اینجوری نبودی که این حرفا رو نمیزدی آخه تو با این وضعیتت میتونی با اگه اون شوار نامردت شیش ساله پیش به من گفته و بچه هم زنده از تو هم پاکتر بودم میفهمی این چیزا رو؟ نمیفهمی که مادر نبودی که بفهمی هرری دفعه دیگم اونقدر اینجا بارا نبا با خودت میاری و اگرم میگم بچه ها چی کارت کنن از وقت یه برو میریت رو بگیر میلیونر میشی بزن بادرشو برنم بزنه قرار ویر میزنی او پول داشته بچه پول همه چیه؟ هم؟ روز به در رو نیلوفر باز میکنه. چی شده چرا اینجوری؟ کجا بودی تا حالا؟ گلی دوتا جوجه یه صورتی یه زر توی یه صندوق آبی نشونه مامانش میده. مامان مامان, مامان، بیا دیگه بیا دو دهامون ببید بیا دو دهامون ببید خوشگره نمو دو خوشگره نمو دو خوشگره نمو دو خوشگره نمو دو قشنگیزه لباسه باز کنمی چی کار داشتی که تلفن تو می کجا بودی؟ کیف کیفمو دزدیده بوده. کجا بودی کیفتو دزدیدن؟ مامان مامان منو نبرش مامان منو چی؟ برو بابا برو بابا آخه منم با مامان دارم صحبت می‌کنی. میگم کجا بودی؟ دزی صد تا کیف می‌زنم یکیشم کیف من. پارتوباداجو من ندام میگم کجا بودی؟ پارک. پارک چیکو کردی؟ رفتم سراغش. رفتم پیش داداشش آدرسش رو گرفتم. گفتم بیا چ مهریتی بهت میدم دست سر ما بردا. نام منم خوبه برو باباچو برو اینارو قضا بده آبشون دهن چشکی میمیرن تو پی خود چادر به من بگیرتی سراغش آره حق با توئه بی خود کردی غلط کردیم همیشه حق با تو تو راست میگی من بهت گفتم روی حلش چیه گفتم یا نه اگه پس فرودگگه منو بگیرم بگن اسم این بچه یکی دیگه تو شناسمی تو جواب میدی اگه به خاطر سوره سابقه نتونم کار کنم تو جواب میدی اصلا میدونی تو معچی شدی فهمیدی بحث بسته است تو به فکر کارت تو فکر کارم نیستم فکر اینم که یه اددام زل زدن تو چشای من به من میگن بچه دوزی ومگه تو چی فکر می‌کنی که فرار کنیم که مثلا مشکلی برامون پیش میاد؟ مشکلی که بچه‌مونه. نه عزیزم تو فکر خودتی. تو اصلا گشتی ما اصلاً پیدا کنی؟ تو ذهنت اومد بری بهش کمک کنی؟ این چه حرفی الان تو می‌زنی ها؟ یورا هر دغدغه‌ش گذاشتش کنا. تو به من میگه چرا کمکش نکردی؟ مثلا میدونی به من چی گذشته؟ اول زندگیت، اوج جوونی، با هزار امید و کردی، بزنه‌ایت اعتماد داری، داری زندگی می‌کنی، فقط نمی‌فهمی دردش چیه. بی خودی بدلیل می‌زنی همه چوری مشکونه دیونه بازی در میاره، همون بهت عذاب وجدان میدن که افتادگی بارداریه. بعد می فهمم نخیر مواد نکشیده زنه من معتاد بود من نمیدونستم تخونی بابایی منیش که سیگارم نمیکشید گفتم ابن نداره برش میذارم از این شهر کوفتی میبرم میشوزه ترکش میدم گفتم میبرمش خونه مادرم خودش نخواست خودش بیکاد رفت میدونی اینا رو چرا طلب بد نگفتم حرمتتون نگار داشتم دلش نمیخواست درو نگاه کنم تو چه شاد بگم که عاشقش بودم واسه بودم هر کاری براش بکنم خودش نخواست فرار کرد من هیچ وقت اونبالاشم بله، هر کی اگه پیداش می‌کردم حتماً یه بلایی سرش میآوردم. اگه میگفتم دو مالش نگاشتم با من زواج نمی‌کردی؟ زواج می‌کردم. اما یه جور دیگه رفتار می‌کردم. یه جور دیگه فکر می‌کردم. الان پشیمونی؟ هم بده اعتماد کردم. نه اصلا من نذا. منت نمی‌ذارم دارم، میگم هم تو اشتباه کردی هم من. من چه اشتباهی کردم؟ ها؟ چون اینکه خواستم بچه‌م زیر دست یه زن مؤتاد بزرگ نشه. همین عملشم نمی‌خوام اصلا مادر باقیش کیه. از الانم هر کاری که فکر می‌کنی درست انجام بده، به من رابطه نداره. یعنی چی؟ یعنی که من گلی از اینجا میرم. به حری راحتی؟ به حری راحتی، فرار میکنید. گلی بچه‌ی منم هست. یعنی الانشم داری حقو به معصومه دی. بچه‌رو بسپرن دستت بعد میری تاویل معصومه دیش. یعنی زندگی گلی برات مهم نیست. حقم داری، مادر واقعیش نیست که دلت بسوزه. خیلی چشما روی. من به خاطر تو و اون بچه قبول کردم که بچه‌دار نشم. اون بچه‌ رو اینه بچه‌ی بزرگ کردم. اینکه از حق مادری خودم به خاطر شما دو تا گذاشتمو میذارین تو سر خودم. تو سد هستی. فروشگاه روز به در حین راه رفتن دکمه استیشنشو میبنده که یه لحظه به یه جا خیره میشه و بعد را میفته برمیگرده و تینا باهاش حرف میزن بفرمید کنی من میدونم بچه محصم مارده بارانو میگه ای بابا ماسمین بیبر مریه اگه بگید ول کن طرفا دو میگه من بچه‌ام می‌خوام بچه‌ام پاک زده به سرش هفت گلش نمیشه من میشناسم خیلی سال باشه رفیرم ها چون بهش پول بده این حرفا یادش میره برو پی کارت خانم آره چون خودتون داغ بچه دیدی حتما خیلیام قصه خوردین منم می‌خوام بچه‌مو نگهدارم نه من چی تو می‌خوای بچه‌تونو بچه بُروختاده ول ول نمی‌خوام بمرو تو دیگه که نرنده لغات زنه ها مفاجئی که نمیشه اساس سرتون بردارم اون توپول میگه يا مسعود شما به من بدین انگار به مسعود دید. دیگه باسی بابا دعوادت نگیره. این مثلا خودش به استاد دنبال فهمیدن میگه. او او هیچ چیزی افت خوشحال شد که تحویلنگ گرفت. چیز میصادرات دست. لاخ هر چی باشه نوش باش توشی جواب دیگه. بابا تو شالستونش شو. اوتا ده من پولشو میدم. مسعود از یه پیرزن دستفروش که مایتاب ما رو گذشته یه پیراشکی با سس میخره. گو که تو بچت تعمین بشه. خب دیگه برم؟ پس تو چی؟ تو با من چی کار داری؟ نکنی جلجلی تو فکر کردی من شوار کردم به مثلا جستو کسی ها نرم که این کار کدوم گویی رفته نمیتونم تنها برم نمیتونم بیا چرا نمیتونم خود تو به جا من دیگه من نمیتونم جا تران زندگی کنم این تو شهرستان چی بهتره آدم ها میربونم با همه هم خوشحال نفس که میکشه یه حوال سالم میره واندریان چه شعار خط می‌گید؟ چت به تا کیه داد باباطیا؟ یه پیره هم به تینا میده. خودم همش را صف، بیروزه بپرس ببینن شعرشون چی میگه. اینقدی همسه بچمن هم زمت کشیدی که بهش بگم تو ماماسته صدا کنه. تو هم که بچه میخواد چی میگی دیگه؟ خدام بچه دارم. آگه چرخ دار میگم من میگم مامان تو آباجان به توک پیدا کرد. بیا بیا. تینا با مانتوی راه راه، شال بنفش و کتی که روش پوشیده به بیابون اومده که اول فیلم دیدی. کیفش رو میندازه روشونه شو با نگرانی جلو میره خانواده پر جمعیت بدون سخف روی فرش کنار هم با بچه های قدرانیم قدر نشستن رحیم کابشنش رو دوشش هست ولی کامل نخوشیده و داره یه فلزو میساره با بروش نستی؟ نیش نستم شکارش ناریم؟ زنشم هیده به چی میخوای اینجا؟ دنبال کعاوه میگردم کی بد گفته کعاوه اینجاست؟ خودش گفته گفت هر وقت پیداشت نکردم بیام اینجا سراغش خارو تو بگو من خودم بهش میگم میخوام بدونم این بچه تو شکرم هم کنم خواب اینی که من خودم بهت گفته بودم که برمی گرده اون این روزا سرش خیلی شلوغه کارخونه داره کارخونه؟ آره بهتساز بفروشه خوشت میاد دروغ بگی به زن حامله کابه کاسبه ببینم دختر رو چیزی بهت نگفتن رفقات الان کجاست دیگه بار به کارت فکر کردی اونی که تو شیکمتی یکی یه دونشه کابه بچه بچه زیاد داره اگه کابه دیدی پشت گوشت هم میبینی چی کار داری میکنی تینا برم جمع میکنی با اوم صبح میاد دانباله مطفیقی بابا توا تو داره داره بابا من اوی چی تو مغزت ها بجوی این کارا بی باید پیدا کن ببین اون هر چی که باشه بابا بچه تو شیکمته با تو هم اما... آن ماستو چه فرق داره تو چیکار کارم من داریم بی باید باید اونو پیدا کنم ببین بچی قف مکن کن کن من اینجام دیگه باید اینشی به خونه اناری خرکی باید باش بزن تو هم غزه نزن بازم رو درست کنه؟ وار تا بده که بچه ها موی خیز نرن بیرون بچون. این فقط یه گووش چل کرده جون من گرفته انقدر قرده. نمیخواام مال خودمه چه لوس؟ یعنی چی مال خودم حرف گوشکن. حالا مال همه مال مال من بهیتال مالهی که آخر شبیه نمیخوام اعصاب خودم رو خرد کنم اگه نه حالی ازدم اینجا بگو با, با این حرف زنبهگو هم اینجا بمانه. خوبه که در میری پیش باباش کرد با بابا باباش مرده تو جوب جمعش کردم. از این, از, از این دوبه ترکیه نگه میزنه بیا برای باشی بگو زنم تم اگرم اینجا دم اگرم بیا برای با... تینا لادن در رو باز میکنه تینا رو میبینه بعد دم در میشینه خوبی؟ الان چهار ماه دوازه روز پاکم سایید هنگرد تو آسمونه به ماما باباش هم چیز نگفته گفته نگه بابای من هم خارج هم. نمیتونن بیان پناهنده <تصفيق> اونا قبول کردن بدون خواستگاری و هیچی همیچی تمام شد بر پی کارش نگه آقای که سودتر دیده بودنش همون وقتی که از خونه فرا کردم همون وقتی که تو پارک خوابیدم نمیدون تو پارکم خوابیدم ها؟ نبوفتم چیزی بش چه کفتیه این تو پارک خوابیدن هر شب آدم فکر میکنه امشب سخت گذشت فردا شب میبینه از شب قبل چقدر سختتر و بدتره صحیح همش میگه چه خوب بچه داشتیم؟ ولی من قبل میترسم هش میگه اگه بچه منم یه وقت مثل من بره تو پارک بخوابه چی؟ آدم تو سگدونی بخوابه سخت بالا سرش باشه بهتر زنه که بره, بره تو خیامون بگرد برو تو گرده. اتاق پشت در اتاق من نشه این بره کن خدا اینجا سر شرف داره به اون بیرون تو هم بمون دیگه خیال شد به ما همینجا تینم همه جا تاریکه و تینا از حیات میگذرد. <تصفيق> میرسه به تخت خودش که طبقه بالا محصا خوابیده میشینه و خیلی ناراحت و ترسیده به یه زل زنه. یه دسته روزدریش رو بلند میکنه میدازه دوره گردنش. اون دسته رو هم همینطور. بعد زبدری هر دو رو با هم میکشه. در این حید محسا تقلیم میکنه و دست و پا میزنه. با دستهاش بالا سرش رو میده. تینا هم خودش رو به تخت فشار میده و بیشتر فشار میاره که یهو ویل میکنه. محسا پا میشه و خودش هم گوشه در اتاق که گفت کرده میشونه. فخری و مامان رو بقیه میزنن پشت در رو. محسا هم داره گریه میکنه و ملحفه رو به خودش فشار میده. گذشته <تصفيق> یه جده برفی مردی داره میره و محسا که یه نوزاد قنداق شده بغلشه تو ماشین نشسته از شیشه عقب داره نگاش میکنه بعد سرشو بر میگردونه و باشش مای نیمه باز میره سراغ کیفش ازش شیشه در میاره مصرف میکنه شیشه ماشینو میاره پایین بخار خارج میشه بعد سرش رو سندلی میفته و چشماش بسته میشه. بچه گریه میکنه، بلندش میکنه، یه کم تکونش میده، بعد چیرش میده مادر و بچه خوابیدن که مادر بیدار میشه، برچه رو میداره تو ماشین، لباس میپوشه و میدهوه بیرون. خوره زمین پا میشه. براد! دوباره میاد تو ماشین. بیرونو نگاه میکنه، با ساکشو برمی داره و میره. مدام به پشت سرش یعنی ماشین نگاه میکنه. روزبه و نیلوفر، سوار ماشین شاستی بلند مشکی رنگی میان خونه محسا. مامان و لادن بیرون خونه. میان سمتشون. نیلوفر میره با مامان حرف میزنه و روزبه دمه در ماشین وامی سه. کرده. ما نمیدونیم چه کارش کنیم. چی شده؟ میخواست خود چه بزنه بزنیم. ما منداختمش تو هست. چرا؟ همش میگه شوهر و بچم دارم میان دنبالم. همه خونه رو زدی در به کرده. بیا هیچکس نمی جحت نظر بهش نزدیک شه نمی میخوام پلیس باش بیا محسا جوب مگه نگفته شووارت بیا این خاون شوورت آوره همه این خونه به هم ریخته گلدونه شکسته بیشتر وسایل وسط حیات خود مقص هم تو حوز نشسته خودش بهش بگو من تو جاده منتظرش؟ با یه لبیش بم بم بچم منو له دروغ میگن من بچتینا رو کوشتم نیست بچه‌ی خودشو کوشده بچتینا همین دروغ میگه همشو در موقع شنیدن حرف‌های مسا نیلوفر تحت تأثیر قرار گرفته فخری پا میشه. خیلی خوب حالا. اومدن دیگه. خوابشو زد. محسن یه دمپای بهش پرت میکنه. اونم جا خالی میده و شیشه اتاق میشکنه. وزبکو من هر وقت می اومدم دمباله گوآ گوجا اینا من انجا گیر انداختن. فکر میکنه من بچه‌ی تینا رو کشتم. باشه باشه باشه تارون باشه. نيلوفر که به چانزاتی محسر رسیده تو چشمه محسا نگاه میکنه و میره. حالش خیلی بده. فلاشه رو ببینه. مثلا این, این بچه‌ی دوستش هم دیگه. لادن دم در وای وایساده. وقتی روز به میاد تو، نگاش میکنه، بعد میدهه. لادن میزنه شونه محسا. روز به رو نشون میده و محسا از تو حوز پا میشه. پلاستیک که چیزایی داخلشه و یه ساک آبی بر میداره. لادن کمکش میکنه بیاد بیرون. روز به نگاش میکنه و متاسفه. اشت تو چشاش جمع شده بعد هم با هم میرن. روز به و محصا با هم از خونه میان بیرون که نیلوفر میبینده نیلوفر وسایل محصو رو میگیره و سوار ماشین میشن. کمکش میکنه. محصو صندلی جلو میشینه و خودش عقب میشینه. مامان و بقیه هم دارن نگاه میکنن. Up os Ly sem band law aga navigan. Masостali ma rezis hyst nie je za zoišie younga man in eben nimelis. Posland DC ekorstund Aus Ds Z professionally Band Fear Kom salam ma Oh Copy hoe ton, mo pan D beer Gopmetz backed, ja my top 3 Kira nya opin ding Benkkel java Wat mom Об 하지만 Me op Whatever Rachid Kom salam maip Og sam Strategie S sponsors ій t Doc Myessential S거야 75馬 احزاریه. نفس از اون شوکلات کرد. فکر دستش به اون میرسه. روزبه؟ بله. دختره را دیده بودی نه؟ بودم دختره. همین که بچه‌اش سفت شده بود. نه بابا کجایی؟ بیا نام جالب افزار. چی می‌خواد عزیزم؟ برمی داره. روزبه ماکس میکنه. رختخونه رو نگاه میکنه. نیلو نیلوفر وسایل محسا را برای فخی و لادن میبره که روزبه ساکو بهش میده ببره. روزبه! میخواهم باید صحبت کنم. تو فهمید. حسین بگیم ما میدونیم که بچه شما مال محسانیست. این اصلا محسا با این حال و روزش نمیتونه مادر باشه. ترکم کنه نمیتونه ها. عدیبای خود را زود مرخصش کردن. اونم سریع رفته کم. می فکر میکنه که ترک کنه میتونه بچهش از شما بگیره. الان می‌دونن خبر دارید یا نرفته دادگاه اصلاتون شکایت هم کرده. بله می‌دونید. کار درستی کرد. ما باید وضعیت کاری می‌کردیم. الان ما اومدیم بهتون بگیم اگه یه وقت دادگاه شما رو خواست شما نرید. نرید؟ باشه. و حتما تو دادگاه آزمایش چیزی می‌گیرن معلوم میشه بچه شماست. واسه تو الان اصلا به فکر ترک کردن نبود. الان به هوای اینکه مادر رفته کمپ. ما تو چند وقتی پیش فکر می‌کردیم جنازاش رو تو خیابون پایدام میکنیم ولی الان برای زندگی کردن او رو دست و پا میزنه شما اگه نرید دادگاه این توی چند وقت دیگه پاک دیگه بعد عقلش میاد سر جاش بفهمه دختر شما دختر خودش نیست دیگه پیله نمیکنه این چرا توی شما داره؟ دوستمونه الان به عشق بچهش داره ترک میکنه به سلامت بایده سلام روز بهتر حال رفتن که یه دفعه برمگرده میبینه پشت سرش نیلوفر ایستاده اصداده رودخونه رو تماشا میکنه. اسمش تینا بود. خودش محصر آقا. پول میخواست. بفت میتونه محصولو به برای جای دیگه. به که قول پول دادی به؟ یه آدم شیشه ای؟ شایی بدونه. نگو شاید بهتونه کمکی بود. کمک نکرد. این بسطه فقط یه بچه سخت شد. تو چرا منو من ر مگه من خواستم نه معتاد باشم من چیکار کردم اون چیکار کرد اصلا حرف من این نیست حرف تو چیه مگه ما هم حرف نزدیم ولی قبول نکردی به خاطر گلی بریم چرا ولی وقتی به مهسا فکر میکنم الان برای من فقط گلی موند منم از همین میترسم ترسم نتونم یه روزی جواب گلی رو بدم ما بریم ممکنه مهسا نتونه پیدا میکنه ولی اینجوری دیگه منم دیگه نمیتونم خدایا مادر گلی بده محساس ظاهرش بهتر شده و روبروی نیلو فر نشسته. اومدم ازت یه خواهشی بکنم. میشه خواهش کنم نه دادگاه ی دادکا؟ نیام. بعد دادکا باید برین آزمایشگاه. تو گلی باید آزمایش بدی. چه بہتر؟ اون وقت همه که تمام شده منم ترک کردم. خودم بهت میگم. تو مادری. بچه ات زنده گلی باران مادر واقعیش هم توی باران هنوز خیلی بچه هست به من خیلی وابست هست نمی خواهم آسیب ببینه تو هم نمی خواهی آسیب ببینه هر کاری ما کردیم به خاطر بچه بود دوی سال ها خوشبخت بوده اگه بفهمی که تو مادرشی همیه چه خراب میشه اون وقتی که نه من میتونم مادرش بمونم نه تو دوست داری روزایی که تو دیدی اونم ببینه حتما تو از من مادر بهتری هستی خودت نخواستی محسا درسته نمیتونی با دخترت زندگی کنی اما مطمئن باش هر کاری میکنم که بچت خوشبخت کشه اول میدن مادر خوبی باشم برش وقتی تو پاک شدی همه چی درست میشه اون وقت میتونی برای گلی یه خاله خوب محصا داره عشق میرزه نیلوفر سبت میکنه بعد بلند میشه نظر من بشم نماتری میذاری مادر بمونم باران اینجاست میخوای ببینیش؟ در خیلی تاریک باز میشه روبه روش یه در حساری و بعد از اون روزبه و نیلوفر کنار ماشین وایسادن باران کت زرشگی و جراب شلواری سفید پوشیده در رو باز میکنه نیلوفر جلوش میشینه خانمی سر تا مشکی در پشت سرشونو قفل میکنه محصم داره نگاه شد میکنه ما به این چرقشن مواما بافته کلی بازی کردیم گفت برو پیش مامانت گفت وقتی دندوناش تمش شد میاد خونه ما خاله من میشه پس بگم خاله نیلوفر باران رو بقل میکنه و به خودش فشار میده بوش میکنه <تصفيق> نیلوفر پا میشه کنار روزبه میسته که محصا رو دره نگاه میکنه علی. نیلوفر در عقب رو برای باران باز میکنه روزبه سوار میشه که محصا از پشت در میاد تو حیاط نیلوفر در رو میخواد ببنده که محصا رو میبینه. چند لحظه به هم نگاه میکنن تا نیلوفر سرش رو تکون میده و در رو میبنده. خودش صندلی جلو سوار میشه. ماشین میره و محصا با حسرت نگاه میکنه. عشق میرزه. پشت سر محصا تابلای بزرگی با عنوان کانون ترک اتیاد بانوان هست. پایان فیلم توضیح دار دارکوب را تقدیم حضور شما شنوانده های عزیز کردیم. این فیلم با نویسندگی و گویندگی بنده حقیر نجم بهشتی راد میکس و ویرایش، محتد کچک سردبیر، سعید شریفی، و تحییه کنندگی وبسایت سایت فیلم تقدیم حضور شما شد. امیدوارم که لذت برده باشید و در ادامه با حمایت های شما دوستان عزیز فیلم های بیشتر و بهتری به شما دوستان هدیه بدیم.